منش... منش... منشه رو دستیه. و اینا سنت سپر ما. اینا سنت. آله دیروز نشیدم دیگه. ارتكازات او قلا منشأ همون سیره‌های رفتاریه اون میشه. حالا البته شما اینو در نظر بگیرید که بعضی از ارتكازات ما ایند شیوع و فراجیر شایق و فراجیر نیست که بیاد طبقش یه سیره اقلا دارد باشه کم مورد داره ممکنه این باشه یعنی موردی باشه ارتکاز اقلایی داریم ولی عامل بهش اینقدر زیاد نشده که سیره اقلا حاصل باشه تو از این باب میتونیم بریم و ارتکازاتی رو چشف کنیم که توش سیره نباشه البته خب اینها ها بحث که تو اصول چم بحث شده دیگه به خاطر همین کتاب را نمیشتن دیگه قصا چا ارزش ازمی رو اصلا ارتکاز کن را داره این که اینجا میگه که از شد و ارتوالاً از نسبت به سیره و در نمبر مثلا ما میگه که اصلا ما کجایی که ارتکازی رو ثابت بشه برای ما که این ارتکاز هست حتی اگر سری رفتاری نداشته باشن مردم ممکن تو از این استفاده کنیم و به خودش شریف برسیم این حتی از گفتیم از سیله هم بهتره یعنی خیالت راحت تره طبقه این که شارع با این موافق تره تا سیله این ارتکاز اقلایی یه مقدار شبیه اون حکم عقل میشه شما یاد حکم عقل اصلا اقلا بگن نگن هم عقل میگفت که ظلم قبیهه بعد گفتیم همین که تو عقلت هست ظلم قویه خیال ات راحت بگو شاره همچین حجمی دارد که ظلم حرام است این هم مثل میشه چنین ارتکاز اقلاهی داریم اگر ثابت شد بعد تا توش پس هم پس شاره هم این رو حجم کرده است بسکت نداره. و اونجا پیاله مراحت دره که این ارتکاز منشهش چیزهایی که بهتر از منشه سیره اقلاهی هستش از این جهت بیشتر خیلی حالا در ادامه اون بحث از اصطلاحات که فعلا وقتی اصطلاحات دیگه فعلا بحث نیست فعلا داریم توضیح میدیم که این کلمه مراد چیست بحث سیری اغلا رو گفتیم ارتکاز اغلا رو گفتیم سیری مصلحت رو گفتیم حالا دو تا اصطلاح دیگه مونده امضا و هجیت یک صلواتی رو تعدیم کنیم بر محمد آر محمد و شروع کنیم خیلی ببینید چلال می امضا یه دفعه اینجا سر کلهش از کجا پیدا شد امضا در بحث سیره امضا دیگه چیه اشاره به امضا کنه سیره ببینید اون سیر مراحل این بحث سیره اینه ما در یک موضوعی یک موضوعی رو در نظر میگیریم ببینین که سیره اوغلا در آن وجود داره اوغلا مثلا وقتی درختی میوهش از دیوار بیرونه شاخه از دیوار بیرون زده و میوه یا اوغلا رو استفاده میکنم همون همونجا نمی کنن همونجا می مثلا اگر بخوام بردارم این یه سیره بود در مثلا نگاهی یه گفتن مثلا که تو کلاس زدم هم زده میشه سر باید این رو میاداش کنید و در این صد تا سیره جمع کردید فرش این رو میخورن مارغه از اون میره استفاده می کنید واقعا داریم در این مرزو خب من الان این مقدار به درد فقه نمیخوره این به درد فقه نمیخوره فقه میخواد حجم شرعی را استنباد کنه فقیه میخواد حجم خدا رو بگید پس این رو باید ا خب چه می کنیم؟ بفرماییم خوندید دیگه سیره را هم تو انجاز کنید هم تو مزفر کنید بفرماییم چی کنیم حکم شرعی در بیاد تو رساله بشه نوشت با این سیله چه نمی شه نوشت بگیم آسیره اغلا داریم بچه می پس تو رساله می دیوزیم که جایز هست نمی شه که نمی شه باید این اینو ثابت کنیم که این سیره در مقابل امام بوده این. و اگر در مقابل امام نبوده امام چی رو میخواسته دهت کنه این سیره در مرآ و مرآ و مسمع امام علیه السلام بوده و امام هم توان جلوگیری از این رو داشته ولی حالا امام جلوی نیست. راضی معارف. 9 نفر بوده یعنی اینا اما امام امضا. این سیله را امضا کرد. تعبیر به امضا میشه تو بازیجاها. حالا میخوام بگم که این امضا یعنی چی؟ شاره اینو رو شاره کرده است این سیره را حالا بساند. یه نجته ای که این کتاب روش توجه داره اینجاست اینو دقت کنید با هم شاره پریده دقت این بزنگار لطفا دیگه چیزی نیسته؟ شاره امضا کرده است این راه یعنی حکم شرعی جواز یعنی حکم شرعی جواز امضا کرده یعنی چه؟ امضا کرده یعنی راضیه، دقت کنید. اینجاست مطلب الان داریم که امزا رو براتو خوزید امزا کرده است شما رو در مقارده این گذینه دو گذینه گردوند یعنی راضی است یا یا نه رازی نه میگوید که جایز است کدوم؟ جهالی می‌فرموند که که اگه بدی ببینیم بسید رضاحت واحد رو اینها دیگه روایت هستید فرمونده فقط اون چون تبر خب حدیثیش حضرت کرده بگم جایزه تنیم می‌گیم جایزه, جایزه. صحبت سریعه این امضا کرده است شما پاسخ این سوال دو گذیره رو امزا کرده یعنی صرفا راضیه میگه آقا همچین سیری هست من در مرآ و مسمایه من هست و منم هم, هم. این راضی بودن آیا منای امضا هست یا نه امزا یعنی چه ما میگه من این رو جوازش رو هم میگم یعنی جایز هست پرک میکنم آیا پرک در آقای این فرم این دو تا اینه صرفا رضایت، نفسانی شاغل کن، سرم. یا نه، حکمه به، یا بگون جل حکم، جل حکمی بکرد. اصلا جواب بده. نه، ممکنه خدا میه چیزی راضی باشه، رضایتی داشته باشه. ولی بگه من حکمی نمیخوام در اونجا جعل کنم. اصلا حرفی نمیخوام بزنم، متوجه ای؟ مثلاً تو بعضی مسائل اصلا خدا سپوت کرده حرفی نداره لذا تا چیزی نگفته شما کاری نداشته باشید مثل جریان بنی اسرائیل، گاوه بنی اسرائیل، خدا حکم نکرده بود رنگش چی باشه با این حرفا رنگش هرچی بخواد باشه حکمی نکرده بود اما بخواهی بپرسی و اینو انگولت کنی و باش بر بری خدا بیخواهی حالا جر کرده. پس جل. اصل فل رضایت ملازمه نداره رضایت بعضی وقتا ها حکم نیستش چی رضایت قراره جواز بده یعنی قراره جواز بده میتونی انجام بدی میتونی انجام یعنی شما میگی هر وقت رضایت دارد یعنی هم این سوال من رو جواب بدید هر وقت شار رضایت به کاری داشت یعنی حکم جلب کرده از اونجا اینو میگی سوال من اینه دارد. راحت تو تکرار نکن اینو جواب بده وقتی اشاره به یک کاری حالا شاره به حرف درست باشه دفاع کن اگر شاره به کاری راضی باشد یعنی در اون قاموس احکام خداون برای این یک حکمی هم جعل کرده است این ملازمه داره با این اینها میگن نه چطور میخواد بگه در خب این منازیم هم همین کردم به زنگاه مطلب همینجاست کتاب میگه رضایت شاره به معنی جل حکم نیست خیر حالا اینو داشته باشید رضایت چیزیست جل حکم چیز دیگریست پس اگر شما دقت کنید تمام می کنم مطلب رو اگر میگید من از سیره اغلا حجم شریع جواز را استنباط کردم و در رساوه نوشتم این را پس شما باید پیر پیر امزا با اون توضیح کردم، امزا به منی سفر رضایت نیست بجه امزا به منی جلد حجمه این رو پد اینجا برد شد اصرار داره که ارائه کنه و شما این رو بپشید حالا روش کتوید فکر کنید باز ببینید که آیا درست هست یا نه ولی سر مطلب که این رو گفتن اینه میگن رضایت شاره اگر معنای امضا باشه این از توش حکم در نمیاز که رضایت شاره ب... اینجوری بگم به معنی حکم نیست به معنی جل حکم نیست رضایت دارد ولی جل حکم نشده است خب پس چه کار کنیم میگیم منظور از امزای شاره یعنی جل حکم او حوات جعل و شار المقدس شاره مقدس جعل کرده است با توضیحات من در مقابل چی این جعل؟ در مقابل صرف رضایت البته خودش میگه خواهد بود. حوات جعل و شار المقدس تق حالا یه سوال البته این الان این چیزی که میخواییم بگیم اینا دیگه است تو مدن رو و لا اصل معنای امزا دیگه تقریبا تمام شد همین بود ببینید این جل حجورو میخوایم براتون بازش کنم شاره تبوته سیره مثلا حواس من فرق نشه همینجا براتون هم. بگید بگیره در به سر مطالعه بردست شاره کنه. این بردست رو باشه شاره میخواد با چون جل کنه میخواد چون جل کنه این حجب شاره رو با اون کاری که سیره تپش داریم سیره برهان داریم این رابطه شروع نگاه کنید. مثلا سیره داریم بر این بر اینکه میچه همون نیمه که از بیوار بیرون زنده اون رو تو را راه سر راهیم رو بباییم سیره در این بحیل که مثلا یه زمین ششاورسی بزرگی هست من مکنم از این رو بیور و جرچم از این رو شاش سیره در این بحیل که این شکسی مثلا صاحب آبراهی هست پس به نتیه یه آبی چشیده شده تا یه مذه اون شخص که این کار کرده این ما خودش میده من میتونم دستان باش پیشورم کونها سیره من این ها هست این سیره که من میتوانم میتوانم این کار را بکنم حالا شار امزا رو به منی جرح حکم رویت جرح میکند حکم را اون حکم آیا دقیقاً همین چیزی که سیره میگه یا نه چیز دیگه ای هستش؟ متوجه سوال چه خود سوال حالا جوابش کاری رو سیره بر آن مثلا سیره داریم که عرب‌ها سیره داشتن ریششون رو نمی تراشیدن. امت‌های دیگر بعضیاشون می تراشیدن. زن‌هاشون مثلا سرشون رو می یا پوشش های مختلفه امسال اینها این سیره داره میگه این افراد این کار را میکنن حالا شارع امضا کرد یعنی جله حوج می کرد چه حوج می این رو با اون کاری که سیره بهش داریم مقایسه کنید شارع میاد میگه حالا من می نویسم اینجا شد. مثلا می سیره بر جایز بودن سوال ترکان روشن ها سختیست فقط نکته داره که این پایش فقیل به تکار باید سیره و جایز بودن مثلا عجل اونو میوه برای ماره کلو باشداره کشم این سیره رو داریم خب حراب حکمشاره که همون برای امتاشو جلده باشو حکمشاره بعد چی داریم؟ بگیزم حکمشاره بعد چی داریم؟ بر منید. بر بر چی؟ بر بر. بر, بر. بر, بر. بر, بر همون جایز بودن؟ جایز بودنه؟ ببین سیره الان تکین چه نوشتهی؟ سیره بر جایز بودن این شد که بنا دقیق سیره ما بر سیره سیره ما بر فیل این رو من دازش به داشت سیره بر اکشن میوه در مورد ما پرچ به شاهده این جایز بودن رو ما در مورد سیره از خودش در بردیم شاره هم میاد همون جایز بودن را پرچ می خب پرچ بگیم چی؟ بله دیگه جایز می رو که میخورن دیگه خب حکم شاره با اون حکم سیره یا با اون سیره الان چه به تیه داره؟ یه چیه دیگه؟ این همه دیگه؟ اون میگه جایز این هم میگه جایزه این میگه حکم مماسق جرده حکم مماسق توسط شاره اینو میگه جرده حکم مماسق خب، مگه قیره اینم داریم؟ مگه قیره داریم؟ چه سیره، برای کاری باشه شاره بیاد، مماسف جرم نکنه میگیم آره نه، خب، امضا نشده دیگه ما سیره هایی رو بریم که امضا شده سیره هایی که امضا شده بذاریم بین امزا هایی که پرسیم این نکته سیره های امزاه شده همین مطلب که رو بزنگان رو بردون می نیزنم شاره حکمشار آن سیره است این اون اول که دو صورت داره نه همین مثل دو بود دو صورت داره یا این و مماسل همان حکم سیره است یا صورت حکم سیره است نه بخواستم بارد این و مماسل سیره است هم همین مثال شو بستیم مناسب نیست ولی مناسب آن حکم هست مناسب آن حکم هست همین را توضیح می تا اون یک کلمه را روشن بشه مناسب آن حکم هست یعنی دقت کنید اگر اینجا نفهمید بردن اذیت می شه. فرض کنید سیره سیره سیره اوغلا بر این داریم که من وقتی چیزی میفروشم و مغبون میشم تو اون معامله یعنی مثلا کلاه رفته بعدا متوجه میشم ای بابا سر کلاه رفته مثلا وارد یه شهری میشم همون اول ورودی شهر میبینم که همین کتاب الفائق رو مثلا طرف میروشه 50 هزار میگم خیلی خوبه بارو شفا 90 تومن میده اینجا 50 هزار سری 50 هزار تومن میدم میخرم این رو بعد میدم داخل میبینم ببینم که الفاهای خونجا همش 10 تومنه یعنی 40 هزار تومن دوباره سرم کلا رفته در اینجا من مقبول شدم خب سیره اقلا فرض کنید بر این داریم که میگن آقا این آقا حد خیار داره یعنی الان حتی با اینه که میتونه معامله رو فرص کنه این حق رو و میتونه فرص نکنه این سیره حالا در مرآ و مسمع امام هم بوده میرسیم به امضا میگیم که بلشاره فرص کنیم اینا انزا چنده هست خب ممکنه دقت کنید ممکن شاره امضا کرده یعنی همون حق خیار قبل را برای این شخص جل کرده باشه حق خیار رو جل کرده باشه اگر این باشه میشه جل حکم بگید جل حکم حکم مماسف میشه چون همون حکمه. اما ممکنه شاره بیاد بگه من حق برای تو جل نمیکنم اما میتونی این معامله رو فسق کنم جواز فسق من بهت میدم جرد حکم جواز فسخ بهت می دم. ولی نگو حق خیار دارم حق خیار بهت نمیدم پس جلح حکم مماثل نشد چون سیره میگفت حد خیار داره این فقط صفحا جواز براش جل شد خیلی خوب این جواز با اون حد خیاری که سیره میگفت شاره میگه من جواز سیره میگه من حد خیار میدادم این جواز با اون حد خیار چیه؟ عین هم نیست ولی مناسبه اونه یعنی کاملا در راستای اوست میتونی فصل کنید همون کار حد خیار شد دیگه اینو این از کجا میاد؟ اون گفتن است که سریالون چی؟ جواز از کجا میاد؟ چه میاد؟ که سیره داری اوغل حق جواز شریش هم از امضاش نمیداد دیگه. امضاش یعنی جلد خودش. حالا سوال اینه، اینو باید میپرسیدین. اینو باید میپرسیدین. چه شما در اینجا که میگی دقت کنید آقا حکم شاهره جل جواز سیر بر حق خیار شما باید این اشکار رو میکنیدی؟ اینم مماسله دیگه جواز فست یعنی چی؟ میتونه جایز است فست کنند یعنی چی داره؟ حق خیار داره دیگه پس مماسل شد در واقع با الفاظ بازی میکنید بعدا یکی شد مناسب نشد مماسل شد حاسا این حرف اینه نه حکم به جواز با حکم به حق خیار فرق میکنه حق خیار یکی از حقوقه حقوق احکام خودش رو داره بعضی از حقوق به عرص میرسن اما جواز ممکنه این احکام رو نداشته باشه لذا از این ظریف نکته ها شما باید حتما بین این دفعه فرق بازده بگید شاهره اگر حکم به جواز کرد این با اون حقیقی خیار متفاوته ولی خب مناسبش هم هست. حالا این کتاب در اینجا که معنای امزا رو میخواست توضیح بده این رو هم آورد که کار رو خود برای ما سخت کرد ولی دیگه ما توضیح دادیم برای تو. از اولش میخونم الامزاو او وقتی شارع سیره ای را امضا می کند همین نیست که بگه آقا من بیم چه سیره ای هست ها خوبه راضی نه هم جل شارل مقدس الحاکم این تمام شد معنای امزا مشخص شد حالا جل که میکنه این نکته دوم شد چه؟ چه چیزی را جل میکند بگه جل حکم یا من بودم این رو به عنوان یه نکته اضافه جدا آوردم نه این, که این رو تو همون معنای امزا گرم حکم مماثل روش بنویسید این همان حکم سی و غلال اول مناسب یعنی این همان حکم نیست ولی با آن مناسبت دارد یا در راستای آن هست مثالش رو میخواهید بنویسید مثالش رو پاورالی گفته پاورالی رو ببینید اونو بخونیم من امثلت جعل الحجم المناسب مماسل که زیاده مناسبه شو خواهیم ما اضاف فرزنا انشارعفی موارد قیام سیرت علا حق الخيار سیره بر حق خیار داریم لم یعتبر حقا شرعا یه حقی رو شرعا معتبر بداند نه این کار نکرده و این پس چی این کرده؟ کرده؟ حکمه به جواز فسخ اون رخ جواز فسخ با همون خی... حق خیار یکیه دیگه برادر در نه یکی نیست همین توضیح بیده فعند نها حکمون تکلیفی جون. جواز فسخ یه حکمون تکلیفیست جایزه حرام نیست خب تکلیفیه منشاره البته مناسبون للحكم الوعی اون حق خیار ثبوت حق خیار حکم وضعی اینو, اینو من نگفتم خیار ثبوت حق خیار حکم وزئیس. جواز حکم در راستای هم مناسبت دارم با هم دیگه متناسبا للحکم که قامت علیه سیره اون حکم چه سیره رو فراهم شد؟ این سبوت حق خیار که این حکم است. بین حکم وضعی و تکلیفی هم که شما بارها خوندید فرق چی هست حکم تکلیفی به افعال انسان رد داره که آیا یکی از اون احکام خمسه رو داره جایزه مستحب مکروه، واجبه یا حرامه حکم وزئی عبارت هسته هست. از در واقع میشه گفت یه نوع هست و نیسته نماز باطل حق خیار ثابته نمیدونم امثال اینها بسیار خوب همین توضیحات برای که این نیم بشه لما اول مناسب به لما این لما جارو مجموع متعلق به مناسب, مناسب. حکمی که مناسبت دارد ل آن چیزی را که قامت علیه سیرتال اقلاییتو سوا اون کانه این هم نکته ثوم که جهل حکم شاره میتونه به تکلیفی باشه میتونه به وضعی باشه سواهر کانه فی مجال به تکلیفیه. روش مثال آقای کسری همون مثال جواز رو بنویسید مثلا حجم شاره به جواز جل حجم جواز مثلا فرض کنید اگر سیره عرب ها سیره مسلمان ها سیری اوقلای در یک منطقه های مورد م... متنابقیه این بوده که ریششون رو میزدن امام هم چیزی نمیگفتد پس معلوم شد جایزه دیم به شاره، این, این امضا جل حکم جواز رو در پیداره این یه حکم تکلیفی است اما مثال برای وزی همون حقی خیار هم فی مجال الحکم الوزعی روش چند تا مثال میگم بنویسید. این مثال ها لازم میشه برسید مثلا ثبوت حق خیاش به حکم عزیز جمعی الان گفتیم صحت یک معامله یادتونه روز اول مثال زدیم الان سیره داریم مثلا سیره واقعی ام پس ترسم هست چه بچه‌ها اطفال البته دیگه بالاخره مداری رشدی داشته باشن که بتونم بیان بخنم اطفال محقرات رو بخرم اوغلا این رو قبول دارن بچه میاد یه دو تا نوم میخره میده. یه دو تخم نوم میخوره می یه آدم می روز یه بستنی میخوره می این سیره رو داریم. شاره اینو امضا کرده. آقای قیصری. امضا کرده. الان همین رو شما به من بگو. شاره. امضا کرده این سیره رو. یعنی چی شده این وصف؟ برعکسه بودید برعکس گفتیه یه کتاب گفتید برعکس مونید شاله رفتید الیزا کرده منم راضی بودن تو برعکسه بودی دیگه آره آره دورو صاف کلا اینو برعکسش کن اون فهمیدی ولی برعکسش کن آره آقای حمید زاده شما بگو اینو الان سیده ای داریم اینو تحلیل کن سیره ای داریم یعنی چه اطفال محقرات رو میخرن اوغلایی رو پذیرفتن با این تمامال میکنه این رو بهinolشون قبول داره اینو از جهت تقیقی و این بحثا که داریم اینو تا آخرش بگو. خب سیره رو دارین بچه میشه شو را مرآب مسمن رو هم بگی خیلی خوبه بگیم این سیره در مرآب مسمن امام هم بوده جلوت خب اینا بس میشه بعدن که چطور ثابت کنیم اینا رو خب بعد چی میشه بعدش میشه جواز فرداش امام امضا کرده این رو شاره امضا کرده حالا تو این بحث گفتیم امضا کرده یعنی چی؟ امضا کرده آطور دیگه اذیت نکن دیگه امضا کرده یعنی رد نکرده تپه خب. این توضیح که امضا کرده یعنی چی؟ یعنی جلد. یعنی سفیان راضی بوده جلد. امام یا راضی جلد. یا نه تدش جل هاش کرد اینو میخوام بگم پس امام علی السلام جل هجوم کرده است برای اینکه حالا آیا هاش حکم مماسل یا مناسب رو بگید مماسل چرا و خب تو همون حق خیاب که حکم جوابت نمی‌کنه است تو مواصل چه مناسبه مناسبه بله نتیجتا فهم نمیکنه بالاخره این کار را افتاد دیگه ولی می‌خوام تحلیل کنیم دیگه علمی شو آیا در انجام شاره حکم مواصل جعل کرد یعنی عین همون چیزی که او غلام میگفتن همون رو جعل کرد یا نه اون رو نگفت ولی مناسب اون رو گفت هم راستا یا امرا گفت الان سلی اوغلا بود موکل معامله اطفال تو محقرات رو میپذیره شاره چی گفت گفت معامله مواصل صحیحه همین صحیح باره مناسب نیست بالاتر از مناسب اصلا خودشه خود خود اون هاش رو شاره هم جعل کرده است پس معامله اطفال صحیحه صحیح. حالا اخرین سوال اینه این حکم یعنی جعل حکم شاره وضیی شد یا تکلیفی وجیه دیگه چون صحت معامله اطفال نمیگه این کار حرامه جایز مکرو اینو نگفت این صحیحه چی؟ الان مثلا الان میگه اجازه اینو میکنن که حرام نیست اونم سالم و چیز فوره بله و ماشی باله اتفاقا اینم میتونه سیره باشه این چه سیره اوغلا برین داریم که طفر نمیتونه یه چیزای بزرگ رو چیزای عظیم رو معامله کنه. شارع هم همین رو همزه در منظر امام نبوده. در موجوده باید. موجوده باید. سیرهای مستتصه رو میگی؟ بعد دیگه اینها رو بعداً بحث می‌کنیم، مفصل بحث می‌کنیم که آیا حجت هستن یا نه، به دردی میخورن یا نه. اینا بحثاش مفصلند. فعلاً الان میخوام میگه امضا یعنی این. یه سوال چلو بعدو شده یه مثلا اثبات این با خود شارح یکی از اوغلا است خب دیگه اون دیگه یعنی شدیدتره خب نظرها در مراد سیره که بحث میکنیم خیلی هم طولانی ببینید چندین شرطه آره، نه نه ببینید همه گوشه کنارها و زوایه ها سیره رو بحث, بحث کنیم بعضی سیره ها هستن که اصلا همه اغلا توش هست بعضی سیره ها هستن مال یه گروه خاصیه البته خب گفتم متنابه خب اون سیره چی؟ اونو باید امام دیده باشه تا این رو برای اونها امضا کرده باشه دیگه لزو اینو میگیم در مرعاب مصعب اگر خود امام یکی از اوغلاس دیگه بدتر دیگه امام خودشه یکی از اوناست اینکه یکی از اوغلاوینم سهرش اینجوری چیدم سهرش رو گفتم خب خود شاهر یکی از اوغلاست او نه نه اینا ماص نه نه اینا ما اینا یکی از عدله یکی از عدله حجیت سیره بعدن وجوب ارشاد جاهل و یعنی امام باید اینا رو ببینه سیده رو ببینه همه کار رو میکنه بعد اگر اینها رو ارشاد نکرده باشد حجوب ارشاد ظاهر زیده سوال میده پس میفهمید فهمید که اینا کارشون درست بوده چه امام چیز هم. بله اینها رو فهمید بعد... خود رو بله بعدم نهانی اینجا چی رو؟ اینجا بزرستر از اومدیه اونجا امام خودش یکی از همین امام وقتی خودش یکی از اوغلا یعنی این سیره الان امامن توشه دیگه از مرعاب مصمن بالاتر دیگه هم. اما اگر این سیره بود که امام جز اونها نبود مثلا ایرانیهای ای داشتن خب این به امام چه ربط داره امام چه ادب لدش به منزیشه که اینها کارشون درسته ولی اگه بگیم نه امام اینها رو دید حالا اینا دیگه بحث میشه اینا مفسر اصل بحث ما ببینیم حجیت سیره چه شرایطی داره چی داره حالا اینا رو اونجا مفصل واسمی بسیار خب آ تمام شد این قسمت و لیسل مقصود و مجرد در رضا ها به ها مطلقا حالا میریم سراغ اون قول دو. اینم یه ذره توضیح می‌خواد خیلی مذهب خصوص اونوردا هر تیکر کلی توضیح می‌دن در مورد معنای امزا قول اول می خوده در باشه؟ مستداد رو جا. سه تا قول میشه اینجا داشته ارائه کرد قول اول فرض کنیم همین یک هم رو قول قول دوم رضایت موت لا پایان نسبت سیره یعنی رضایت شاره نسبت به او کجا تو چه احکامی میگه کجا ندونه همه احکام دیگه هر حاج احکامی بیارید سیره او هر حکمی بیارید امضای شارع یعنی رضایت او نسبت به اون سیره اول سوم این هم رو میگه رضایت امزایش آره این یعنی رضایت ولی ای نه در همه موارد تو همه موارد رضایت کارساز نیست طبق قول سفون تو بعضی جاها رضایت همون امزاست این رو الان اینجا دازم گیده ببینیم میبینی که و مقصود و مجرد رضا و به ها مطلقا این قوله او غیر غیره معاملات پس بگیم رضایت در غیر معاملات اینا بوله صفر ما با این تعریفی که گفتیم از امضا اول اول حساب کردیم اول دوم و سوم رو گذاشتیم کنار بگیم اینها نیست حالا چرا غیر معاملات رو گفته اینها این دیگه تو بحث های آیه نهایی این ریشش هست تو پاورقی همینا توضیح داده خیلی لازم نیست به نظر من الان وارده شدنش خیلی برای شما نیاز نیست خیلی خودتونو تو اذیت ننداست فقط این آیه نائینی بخواید یه توضیحی اونجا فارسی بنویسید که دیوار کسی پرسید بی اطلاعی نباشید بنویسید آقای نائینی توی فقهی معاملات یا اون پاورقی رو دو. آقای نائینی مجرد رضا در معاملات را کافی نمیداند یعنی چی کافی نمیداند مگه چی میخوااستیم کافی ب؟ ببینید بس تو امضاست ببینید یه لح رو ببینید اینو بگم اینو نگم شاید بعدا چیز بشه. ببینید الان ما داریم چی رو تریف می معنی چی رو میگیم امضا معنی امضایی که کشتش حکم شدین خوچم شی رو تو رساله میخوام بدیم مردم بهش عمل کنم. امزایی که حکم شرعی در برداره خب آقای این کتاب داره میگه اون امزایی حکم شرعی داره که به معنی جل باشه امضا یعنی جل بعضیا گفتن نه امضا یعنی رضایت خصوص اون هم داره چه اشغال ما هم همین هم هم هم هر اینه که امضا که به معنی رضایت باشه که حکم توش نیست رضایت که حکم نیست آوے ناینی میگه اگر رضایت در غیر معاملات باشه مثلا ریش زدن و پوشش و این حرفا معامله نیستن که اگر رضایت در اون اونها باشه اونا حکم هست اونا حکم میاره اما در معاملات نه دیگه صرف رضایت کافی نیست آقای ناینی میگه پس تو معاملات آقای نائینی با ما یکی میگه صرف رضایت کافی نیست باید یه جریام داشته باشه که ما حرفمون امون فردش با این ناینی میشه که ما میگیم اصلا امضا یعنی خودش جل ایشون میگه نه در معاملات باید یه جل حکمی هم حشدش بیاد رضایت شاره در غیر معاملات کافی هست این هم از این مطلب خب چی نمیشتید؟ آی ناینی مجرد رضا در معاملات کافی نمیتوند بلکه احتیاج به اعتبار شرعی دارد آی ناینی میگه تو معاملات ها چون معامله خاصن نقل و انتقالش هست ملکیت از یه نفر به این نفر دیگه منتقل میشه صرف رضایت که معنای انتقال رو چه نمیاره بسیار خوب اعتبار بنوشتید احتیاج به اعتبار شرعی دارد بنویسید مثلا اعتبار نقل و انتقال ملکیت صافی انجام دوی همین کتاب هم اینا رو دوباره میخونیم پس نگران نباشید متوجه ای این مطلب خواهید شد. خیلی بخواب تو این پنج این عبارت رو تموم کنیم به نظر هم دیگه مطب پیچیده ای تو این نباارت. و ظاله الان داره علتش رو میگه که چرا امضا را به معنی رضایت نمیگیریم ما به معنی جلله هو میگیریم من رو ببینید اگر تا حالا گوش نکردید همین یه خ توضیح بدم، بعد بخواون. چرا امضا را به معنی رضایت نگرفتین کتاب جل جلو؟ علتش اینه میگه چون امضا بعدش ما میخوایم حکم شرعی شاره رو در یه جای ثابت بدانیم طبق همین امضا اگر امضا رضایت باشد که حکم شرعی نیست که چطور شما از روی امضا حکم شرعی ثابت میدونید رضایت سبوت حکم شدید رو در پی ندارد پس امضا را به معنی جعل حکم میگیرید دیگه دالکه یعنی روی دالکه بنویسید اینکه که معنای امزا جل حکم باشد نرزایت دالکه یعنی هم مطلب که طاله گفت لعن نصیرت الاغلائیتا مما یقع و فی طریق استنباد حکم شدید یه نگاه کنید اینا باشه سیره اوغلا مروه یاغلو فتنه است به ماطر کوششن ببینید همین چه من مسیر استنبات رو گفتم سیره اوغلا میاد برای ما حکم شرعی اثبات میکنه استنبات میکنیم ازش خب حالا که اینجوریه و یصدل رو به ها الا حکم شرعی واقعی او ظاهری اینم یه نکته است. حکمه شرعی چه از سیره اوغلا به دست میاد؟ خیلی وقت‌ها حکم شرعی واقعی است. مثل همین حکم جواز اش نمیگم جواز این. یا صحت معاملات تفرویل. بعضی وقتا حکم برداشت شده از سیره اوغلا حکم ظاهری است. حکم ظاهری است. مثلا حتما این مثال رو بنویسم. مثلا سیره اوغلا بر برایت داری رضی ها برایت رو نه از برایت عقلی گفه قابل ها بیان میگن نه قبول نداری و نه از برایت شرعی که رفع مالای عالمون این حرفا نه بلکه برایت اقلایی رو قبول دارن یعنی میگن آه اقلا بین خودشون این سیره رو دارن که اگر کسی چیزی رو نمیدونست اون رو معاخصه نمیکنه. خب این سیره اقلائیه به ما میدهد که اگر حکم چیزی را نمیدانستی مواخذه نخواهی شد حالا از شما سوال دارم این سیره اقلائیه که این حکم را به ما داد این حکم حکم واقعیست یا است یعنی <تصفيق> واقعا اون حکمی نداره حرام نیست یا نه در ظاهر میگیم ان که حکمی نداره و توبیخ نخواهد ها این جزء شلونه است پس اونجا بنویسید حکم ظاهری رو بیشتر توضیح داد دیگه هم مقدار بس اون حکم ظاهری روش بنویسید مثلا اثبات برایت عقلاییه اقل... یا عقلیه اگه گفتید عقلاییه عقلاییه عقلیه بنویسید غلط میشه مثلا اثبات براءت عقلاییه اگه شاید ساعت را قالب همین اتفاقا بسیار خوب آقا جان سیر او در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد یستدل به ها علل حکم شرعی حالا چه واقعه چه ظاهریش و من الوازه در واقع این معنای امضا چهار پشت نکته خیلی دقیق و ریز بود که همشو توی متن اینا قرار دادم میتونست اینا جدا کنن نکته نکته بگید بینن بسیار خوب و من البازه تقریبا روشنه صرف رضایت که به منی حکم به نیست که چطور سیره به من وقتی به امضا رسید یعنی رضایت از این رضایت در درمیاد کجی درمیاد و من الوازه اند مجاز در رزش شاری لایس هچ من خیلی خوب پس به منی جرم میگیریم اینم تمام حالا میگیم آیه آیه نو نویسنده چه لج نیست که رو نوشتید. باب وسیع گفتن رضایت امضا یعنی رضایت میگه ها اونها که گفتن رضایت اون دو تا قول دیگه اونا روی این حساب گفتن که رضایت در پشت چی داشته؟ جلاش داشته ولی بدون جل شما به این بکبشری نمیرسی نمیتونه تو رسالت چیزی بریمسی هی راضی راضی رازی اما این یه نظر ایناستم ممکنه شما خودتونم بگید نه آبا همین رضایت کافیه این دوگه نظره خب اینو تمام کنم فما از هرومن بعض القام بعضی از علمای اصول که ظاهر شده این من تفسیر الامزای به رزا لالله شاید از این جد من جد ملاحظت هیل به ما هوا مقدمتون و طریقون الاج جعل رضا رزا مقدمه جعل حج بوده اینا رضا گفتن حالا حجم مماسل یا مناسبونن لا به ما هواهو نه به ما خود رضا خود رضا مدد نظرشون همه گفتم منصور رضاست که در پشت جهل حکم دارد نعم آخرین نکته یه دقیقه نعم یعنی میگه البته البته امزایی که به معنی رضایت باشد بعضی وقتا ازش حکم به دست میاد ولی اون به درد ما نمی. اون رو نمیخواه ما اون بحث ما نیست ببینید من میخوام فرض کنید این گوشی مال شماست میخوام توش تصرفی کنم ورش دارم نگاش کنم اینجا صرف رضایت کافی است پس امضا اگر مجرد رضا تو همچین احکامی به در بیخورد ولی این محل ما نیست نه ببینید، احراز و مجرد رضا کافن فی بعض الموارد مثل احراز رضای اون شاره به تصرف حاكم شرعیی بعض الاموال المختصه بشاره الان شاره میخواد تو سهم امام تصرف کنه سهم امام میگن مال شخصی خود امامه خب چطور الان تصرف میکنید به عنوان شهری میبینید طلبه ها اینها میگیم ما صرف رضایت شواله رو کسب کنیم احساس کنیم کافیه اونجا اب نداره پس زیر این اموال مختص بشاره بنویسید سهم امام ولکن خب آقا این هست ولکن هاذا غیرو مساله الاستنباط ما در مورد استعمال حکم شرعی داریم بحث میکنیم نه این که مثلا از رضایت شاره این جواز رو برای خودمون ما استفاده کنیم و تو این مال شخصی مثلا ما تصرف کنیم این با اون فهم میکنه حالا کمالای اخواه این رو روش فکر این دیگه فرصه تموم شد اگر جدید توش بود من فردا دوباره عرض میکنم آقا بحث امروز بحث پرنوچده و یه ذره دقیق و پیچیده ای البته لازم بود خیلی توهم کردن مطالبو اینو یه مطالعه و مباحثه ان شاء داشته باشید هیچ چیزی براتون باقی نمونه سلام برچسی <تصفيق> اللهم صل علی